سال هزار و و چهل بخت و اقبال به شکلی باور نکردنی از ما روی برتافت نور پیروزی دیگر بر سرزمین من نمیتابید، بلکه شبه هول شکست بود که سایه مخوف خود را بر سراسر آلمان گسترده بود بمباران های گاه و بیگاه شدت یافت و هنگامی که اسکدرران های انگلیسی آمریکایی بیوقف خاک آلمان را میکویدند ما نیز به خدمت فراخوانده شدیم همه پسرها از چهارده سال به بادا کمک خدمه توپ های زده هوایی شدند. یگان هایشان بخشی از نیروی هوایی را تشکیل میداد و کوچکترها برای کارهای نظیر مرس، بیسیم و وسایل ارتباطی دیگر آموزش دیدند. فقط اعضای سازمان جوانان نیروی هوایی هیددرری بودند که بدون توجه به سن و سالشان کمک خدمه ی ضد زده هوایی شدند. این تصمیم الزامن برنامه عادی زندگی را بر هم زند. صبحها به مدرسه می رفتیم. بعد از ظهر آموزش نظامی می دیدیم. و هفته ای دو شب در پوست های زده هوایی به عنوان بیسیمچی یا دیده کار می کردیم. در برابر همه این زحمات نه تنها یک فینیک هم نصیب ما نشد، بلکه به ما گفتند بزرگترین افتخار برای یک پسر آلمانی این است که برای انجام چونین وظیفهی انتخاب شود. توجیهی که البته در آن موقع باور کردیم. ولی مربیان ما که سربازان حرفه بودند چنین عقیده نداشتند. و ما را در حکم سلاح جدید پیروزی دکتر گوبلز می دانستند. خودم شاهد توبیخ یک درجه دار نیروی هوایی بودم که ما را کودکستانی لعنتی، و مسئولان اعزام ما را بیمار روانی خطاب کرده بود مادران ما جزو کسانی بودند که به شدت از این طرح نگران شدند هنگامی که ذهن همه ما را با این سخنان شیرین وطن پرستان پر می‌کردند که همه چیز فدای پیشوا و میهن مادران ما برای فرزندان نوجوان خود به شدت دچار وحشت و هراس شده بودند در آن زمان عواطف مادرانه را درک نمی‌کردند و از احساس آنها نسبت به فرزندان بیگناهشان که به دست حکومتی شریر در اجرای قمنگیز ترین صحنه های نمایش گوتردامرونگ قربانی می شدند چیزی نمی دانستیم سال 1943 اولین شنبه ماه اکتبر بود و من در هوخ نگهبان شب بودم هوخ یکی از بلندترین ساختمان های منیخ بود که سیزده طبقه داشت و روی پشت بام صاف و همواره آن، دو توپ ضد هوایی به فرماندهی یک ستفان دوم قرار داشت که خدمه آنها فقط کمی از من بزرگتر بودند. من در اتاق کوچکی زیر سقف نشسته بودم. گوشی ها به گوشم بود و داشتم تکالیف مدرسم را انجام می دادم. یا بهتر است بگویم جریمه می نوشتم. در مدرسه با یکی از همشاگردی هایم که ادعا می کرد هیتلر بزرگترین مرد جنگ در طول تاریخ است وارد بحث شدم. ضمن که با او مخالفتی نداشتم ولی در عین حال معتقد بودم که فردریک کبیر هم در حد هیتلر بوده است. همشاگردی من این عقیده را قبول نداشت. بنابر این تصمیم گرفتیم موضوع را با معلم خود در میان بگذاریم. آقای معلم که اتفاقا مدیر مدرسه و رهبر سیاسی حزب نازی هم بود از اینکه فردریک کبیر را هم هیتلر خوانده بودم به شدت خشمگین و شد. و برای اینکه خلاف آن را به من ثابت کند دستور داد 500 بار بنویسم پیشوای ما آدولف هیتلر بزرگترین مرد جنگ در طول تاریخ است از پشت بام بالای سرم صدای چند تا از بچه‌ها را که ورق بازی می می‌شنیدم یکی داشت قسمتی از خطابه سزار را حفظ می‌کرد از اینکه فرد دیگری هم داشت تکلیف مدرسهاش را انجام میداد احساس رضایت کردم. از روی صندلی بلند شدم چراغ را خاموش کردم و پرده یک کرکره را کنار زدم. پنجری کوچک را باز کردم و از آنجا به منظره شب چشم دوختم. حتی یک لکه ابر هم دیده نمیشد. ماه و ستارهها با تأصف به شهر تاریک و سیاه چشمک می زدند. به های کلیسا که نور ماه را منعکس می کردند و نوار نقره رودخانه ایزار که به نرمی خود را از پیچ و خمهای گوناگون به سوی جنوب می کشید. نگاه می کردم. خونکا و تازگی هوای اکتبر رخوت و خواب‌آلودگی را از تنم بیرون برد. شهر پیش روی من در خواب فرو رفته بود. چه شادی ها و غمهایی در پشت پنجره های تاریک است و چه حوادث تلخ و شیرینی در دل شهری که ظاهراً به خواب خوش فرو رفته نهفته است. پنجره را بستم. پرده را کشیدم و دوباره چراغ را روشن کردم. گوشی را به گوشم گذاشتم و دوباره پشت دستگاه بی سیم نشستم و به نوبت به صفحه کاغذ و دستگاه خیره شدم از اینکه میبایست چهارصد و نود و هفت سطر دیگر بنویسم احساس ناراحتی میکردم ناگهان چراغ قرمز کوچک روی دستگاه روشن شد اول فکر کردم شاید یکی از دخترهای ستاد نیروی هوایی در مونیخ باشد که میخواهد سر به سر یکی از پسرها بگذرد اهرام را فشار دادم ابتدا صدای ترق ترق به گوش رسید و ناگهان توجه توجه از باقه وحش به کلیه کارآموزان تکرار می کنم از باغ وحش به کلیه کارآموزان در همه مراکز نیم دقیقه سکوت برقرار شد و دوباره توجه توجه از باغ وحش به کلیه کارآموزان در همه مراکز به قرار اطلاع یک دسته ملخ از مرز گذشته به سوی شرق و شمال شرقی در حرکتند گروهی شطور هم به دنبال آنها میآیند. شلاغ ها را آماده کنید تکرار می کنم. یک دست ملخ از مرز گذشته به طرف شرق و شمال شرقی در حرکتند. این اولین باری بود که شاهد چنین اتفاقی بودم پیش از این واقعه هر وقت حمله های هوایی اتفاق افتاده بود من در مرخصی بودم میلی بلندی برداشتم و به دریچه که به سقف تبیه شده بود زدم بعد از چند لحظه دریچه باز شد و چهره خواب خواب‌آلوده هینی به من خیره شد و پرسید کوچولو چه خبره؟ آنها مرا کوچولو صدا میکردند چون از همه جوانتر بودند حدود سی فرون جنگنده ای با تعداد نامعلومی بمبافکنان سنگین از مرز دربی گذاشتند و وارد خاک ما شدند فرمان آماده باش داده شد هینی دانش آموز سال سوم دبیرستان این خبر را به اطلاع ستوان که بی مشغول ورق بازی بود رسند صدای طرخت طرق گوشی دوباره بلند شد. آسمان خراش؟ آسمان خراش، صدای من رو میشنوی؟ به گوشم. من یکی از احرام ها رو به سمت بالا و دیگری را به سمت پایین فشار دادم از آسمان خراش، صدای شما رو میشنوم. به گوشم. از باغ وش، موازه به ملخ های تک پرواز باشید، تمام تمام هینی سرپرست بود، پرسید؟ سازش خبر موازه به جنگندهی با های تک پرواز باش ورق بازی هنوز ادامه داشت پسری که دقایقی پیش خطاب سزار را با شور و حرارت میخواند حالا مشغول خواندن قطعی از ویرشیل بود به بیسیم گوش دادم از باغ به کلیه یک ها را دسته های ملخ از مرز گذشته و به سوی جنوب شرقی میروند شطورها هم به دنبال آنها هستند دسته های بیشتری هم از مرز جنوب غربی گذشته و به طرف شمال شرقی می روند. آماده باش نوع اول را اعلام می کنم. تمام دوباره به بالا نگاه کردم. کارمون است اینی. تعداد زیادی جنگنده بمبافکن همراه با بمبافکن های سنگین از مرز غربی به طرف جنوب شرقی و جنگنده بمبافکن های بیشتری هم از مرز جنوب غربی به طرف شمال شرقی در حرکتند دارن آژیر خطر میکشند شهر خسته باست قررش ممتد آشیر از خواب پرید. خانه های آرام مثل کندو به جنب و جوش افتاد. حیجان آدمها حیوانات را هم به وحشت انداخته بود. به نقشه نگاه کردم. هواپیماهای دشمن همه در یک نقطه بر فراز دریاچه کانستانس تجمع کرده بودند که با توجه به نور محتاب ظاهرا می بایست نقطه کاملا مناسبی باشد. به یاد مادرم افتادم. حتما خیلی ترسیده بود از اندیشیدن به ترس دچار وحشت شدم ناخداگاه دست به دعا برداشتم اما پیش از آن که شروع کنم این پیام مخابره شد از باغ وحش به کلیه کارآموزان دسته های ملخ و شطور مدام به یکدیگر ملحق میشوند. آماده باش نوع دوم را اعلام میکنم شلاغ ها را آماده کنید تمام آشیر خطر دوباره به صدا درآمد و این بار وضعیت ها از آن بود که حمله هوایی به طور قطع انجام خواهد شد. هواپیماهای جنگی و بمب های سنگین همچنان روی دریاچه کانستانس تجمع می‌کنند، اما مسیر نهایی آنها هنوز مشخص نیست. موزه بگیرید. در این موقع ورق بازی متوقف شد. پوتین های سنگین با شتاب روی بام به این سو سووانسو میرفت. چراغ اتاق را خاموش کردم. پرده را عقب زدم و پنجره را باز کردم. برای یک لحظه شهر مثل همیشه آرام به نظرم رسید اما تدریجا صداهایی از خیابان شنیده میشد صدای مردمی که سراسیمه به طرف های عمومی میدویدند ناگهان صدای ضعیف هواپیمایی را شنیدیم به طرف بالا فریاد زدم چه هواپیمایی هینی جواب داد هنوز چیزی نمی‌بینم. صدا بیشتر شد و من از پنجره کوچک اتاقم انگشتان خیالی نوررفافکن را که با تردید در افاق تاریک در کند و کاف بودند میدیدم هینی فریاد زد: هواپیمای انگلیسی ضد هوایی شروع به آتش کرد من با سه تا تماس گرفتم از آسمان خراش به باغ از آسمان خراش به باغ یک ملخ بالای سر ماست سعی میکنیم بندازیمش به بگوشم به از باقه بحش، بالهاش هدف بگیرید، میتونید؟ از آسمان خراش، سعی خودمونو میکنیم از باقه بحش، ارتفاع تقریبه رو مشخص کنید، بگوشم از هینی پرسیدم و جواب دادم از آسمان خراش به باقه بحش. ارتفاع حدود پنج هزار متر، بگوشم از باقه بحش، هواپیما خارج از رس شماست، بگوشم از آسمان خراش، چیزی دیده نمیشه، تمام پدافند هوایی ناگهان آتش را متوقف کرد هینی؟ اون بالا چه خبره؟ هواپیمای انگلیسی هنوز اون بالاست اما نورفکنها گمش کردن ما هم, هم اینطور کاشون دیده بودی خلبانش به جای احساب انگاه کابل فولادی داره دوباره قرارگاه ستاد رو گرفتم از آسمان خراش، ملخ موفق به فرار شد. بگوشم. از باقه به با آسمان خراش. دوباره پیداش میکنیم. بگوشم. از آسمان خراش شرط میبندی؟ از باغ وش. پول خبری نیست. تمام. <تصو rocky> <متصفيق> صدای هواپیما هنوز از پنجره به داخل میرسید. بعد به تدریج آهسته تر شد. هنوز میتوانستن فروق هایی را که در آسمان، سرگردان بودن ببینم، اما آتش بارها از تیراندازی بازی ایستاده بودند. تا مدتی هیچ اتفاقی نیفتاد و در این لحظات بود که من به موقعیت خطرناک خودم پی بردم. دعا می کردم که هوا پیما این دفعه هم مثل دفعات پیش از روی مونیخ بگذرد. دوباره رشته افکارم از هم سیخت. از باغ وش به کلیه یک ملخ ها و شطورها از محل تجمعشان در بالای دریاچه به طرف ما میآیند. تعداد بیشتری نیز از طرف شمال غربی میآیند. آماده باشید. تمام. در میان هینی مواظب باش. کوله خودم را از گل میخ برداشتم. درست قالب سرم بود. ناگهان سکوت اطراف با قرش ناگهانی آتشبارها در هم شکسته شد. این بار ضد هوایی 20 میلیمتری mm نبود. No بلکه هشتاد و میلیمتری بود. از باقی به همه مراکس دسته های ملخ بالای سر ما هستند. آتشبازی انقریب شروع می شود. موفق باشید. تمام. آتشبازی واقعا انداش شروع می شد. هواپی ما ها از طرف قرب و شمال غربی می آمدند. نورفکن هایی که یکی دو دقیقه پیش ثابت بودند، دوباره سرگردانی بی امان خود را از سر گرفتند. حالا دیگر حساب دقایق بود. به رغم سردی هوا عرق کرده بودم و فشار دردناکی در شکمم احساس می کردم. ترسیده بودم. کوچولو بیرون رو نگاه کن. می ببینی؟ باز هم هینی بود. به فروغ سرگردان نورفکن و انفجار قاسی شکل گلوله توپ خیره شدم. در جنوب شرقی شهر یک هواپیما به طور عمودی، روی یکی از نورفکن ها شیرجه رفت و مثل یک پروانه مسیر نور را دنبال کرد. نیروی پدافند دیوان وارشلیک می کرد. گلوله های رسام مثل کرم شبتاب فضای نیمه تاریک را می شکافتند. اما هواپیما بر و درخشان همچنان در روشنایی نورفکن شیرجه میرفت. خدای بازارگ، این خلبان می اعصابی به مراتب قوی تر از اعصاب معمولی داشته باشد. در این موقع جسم کوچکی از بدنه هواپیما جدا شد و هواپیما با قررش مهیبی خودش را بالا کشید و از نور مخاطر آمیز فرار کرد. لحظه ای بعد به دنبال یک انفجار ناگهان نور خاموش شد. تعداد زیادی هواپیما درست بالای سر ما بودند. در چند ثانیه شهر با چراغهای سبز روشن شد. نوری که ردیابها به آسمان انداخته بودند بیشباهت به درختان کریسمس که وارونه قرار گرفته باشند نبود اتاق که من که لحظه پیش تاریک بود در تابش نور سبز روشن شد از باغ بش به کلیه ی بمبافکن های دشمن روی شهرند در این لحظه های آخر دعا بخوانید. پیشفای عزیز و میهنه عزیزم دیدار به قیامت اگر در این دنیا نتوانستیم گردن این انگلیسی ها را خورد کنیم شاید در آن دنیا بتوانیم. تمام. در چنین شرایطی باز جای شکرش باقی بود که آنها زبان رمز مسخری خودشان را کنار گذاشته بودند. وقت نداشتم که در این باره فکر کنم، از دریچه چه نگاهی به بالا انداختم. خدم یاتشبارها به جای اینکه پشت مسلسل‌هاشون در حال آماده باش باشند، همراه با افسر خود روی زمین نشسته بودند. آهسته به هینی گفتم: فکر کردم شماها باید پشت مسلسلاتم باشید کوچولو اگه میخای قهرمان باشی خودت برو اون بالا اما سوطمان ویرگرچی آخه اون نشانه صلیب آهن داره درسته که نشانه صلیب آهن داره اما سلیب صلیب چوبی هیچ خوشش نمیاد در آن زمان هنوز هم به این عقیده امید بسته بودم که شجاعت داشتن یکی از شرایط گرفتن نشان است آن شب برای نخواستیم بار با پدیده‌ای جدیدی به نام جنگ تمام عیار یا جنگ یک پارچه آشنا شدیم مثل یک جاده صافکن پیش میآمد آهسته ولی حتمی و گریز ناپذیر بود همه روی زمین دراز کشیده بودیم و در سفیر گلوله‌ها و انفجار بومب ها و بوی سوختگی و گرد و خاک احاطه شده بودیم گاه به نظر میرسید که همه جا به طرف بالا کشیده می شود. گویی نیروی جاذبه زمین خونسا شده بود مثل برگ درخت روی زمین به این سوان سو پرتاب می شدیم. هنوز سر جای اول من برنگشته انفجار بعدی دوباره بلند ما جست کرد. جستو آخاندن کاری از ما ساخته نبود. پدر ما که در آسمان های، مقدس باد، صدای انفجار، آق، تکیه های بزرگ زیمان و بود که میریخ روی من. مقدس باد نام تو، برقرار باد اراده تو در زمین، پشتم پر از شیشه خورده بود و تکههایی از قاب پنجره روی دست راستم افتاد آنچنان که در آسمان است روزی ما را برسند و گناهان ما را ببخش که ما از در این موقع محل انفجارها درست و در مجاورت ما بود و زمین را میلرساند یکی مادرش را صدا میزد شاید خودم بودم دستی قوی دستم را گرفت و صدای دردمندی با من به دعا کردن مشغول شد و گناهان ما را ببخش چنان که ما از خطای دیگران میگذریم، ما را از وسوسه دور کن کسی که با من دعا می‌خوند سرکار ستوان بود باز هم صدای انفجار خاک بیشتر آجر و سیمان بیشتر و ترس بیشتر ما را از بدادر در امان به زیرا را حکومت قدرت و عزت تا ابد از آن توست تنه. یک انفجار دیگر ویرانی بیشتر آمین خدای من خدای من باز هم سرگرصدوان بود ترجیح می دادم در روسیه باشم و در این جهنم نباشم دستکم در آنجا میفهمیدم که این بمبها از کجا میآیند زدم زیر گریه همش را نیاز میکردم که هرچه زودتر از این جهنم خلاص شویم گناهان خود را به خاطر می آوردم، دروغی که گفته بودم، چند حب قندی که کش رفته بودم، نافرمانی از حرف مادرم. آه، خدایا مرا از اینجا نجات بده، آخر چرا تمام نمی شود. یادم آمد که چند روز پیش، ورقی از یک هواپیمای آمریکایی به زمین افتاد، مضمون آن به خاطرم آمد. مردم آلمان، ما با شما سر جنگ نداریم، ما با نازی ها می جنگیم و میخواهیم شما را از اصارتان آنها آزاد کنیم. آزادی؟ چه جور هم؟ داشتن خودشان را تبرئه می کردند. تکان تگان، انفجار و ویرانی ادامه داشت. اگر کسی با حد اکثر صدای خود فریاد می کشید، شنیده نمی شود. چون سر و صدا باور نکردنی بود با چشمان بسته انگشتانه نشانه ای دستم را در گوشم فرو کرده بودم و عصبی و نگران کف و اتاق گوز کرده بودم به خودم گفتم این وز نمی تواند ادامه پیدا کند سرانجام روزی باید تمام شود زمان به کندی میگذشت. گذشت ها مثل دقیقه ها دقیقه ها مثل ساعت ها و ساعت ها مثل یک عمر به نظر می رسید سر کردم دوباره دعا بخوانم. اما به محض اینکه کلمات اول را به زبان آوردم انفجار دیگری ساختمان را لرزاند موج انفجار از زمین بلندمان کرد یکی از دیوارهای آجری انبار آذوقه فرو ریخت. ناگهان همه چیز به طور غیرمنتظره تمام شد نه هواپیمایی نه انفجاری فقط خاک بود و دود و بوی سوختگی ما تو خودمان را از جا کندیم و لباسمان را تکاندیم هیچ کس حرفی نمیزد. وحشت و ترس از رنگ و روی مان پیدا بود. ساخت آسیبی ندیده بود. اما دستگاه مخابرات روی زمین پخش و پلا شده بود. سیم ها وای تسالاتش درآمده بودند. پنجره از جا کنده شده بود. به آرامی از پلکان کوچک به روی بام رفتیم. آسمانی که پیش از حمله هوایی صاف و از ستاره بود، از گرد و خاک به ابری سیاه تبدیل شده بود. آنچرا که از آن بالا می دیدیم، روز محشر را تداعی می کرد. خیابان زیر توده خاک و سنگ خانه های ویران شده، مدفون شده بودند. به جز منطقه اطراف آسمان خراش و یکی دو خانه در همان دور و حوالی، خیابان های اطراف به طور کامل خراب شده بودند. آنچه باقی مانده بود و میشد از آن عکس گرفت سنگ پاره و قطعات به جا مانده از دیوارهای بود که هنوز روی بعضی از آنها قبلمه و تاو آویزان بود کمی آن یک تخت خواب دیده می‌شد مناره‌های کلیسا در حالی که در دریای از آتش شعلهور بودند همچون ارواح گناهکار در عالم برزخ که برای رسیدن به بهشت اجسالا به می‌کنند منظره جنوب و جنوب شرقی را تیره و تار کرده بودند توپ های زده هوایی گونه که آنها را ترک کرده بودیم با هایی که به شکل تهدیدآمیزی به طرف آسمان نشانه رفته بودند سر جایشان قرار داشتند به محض اینکه که وضعیت سفید اعلام شد سر و کله یگانه آتش نشانی و گروه نجات پیدا شد آخرین نگاه را به اطراف انداختیم هینی گفت اگه وضع شفته سوتوان گفت خیلی دست کم گرفتی رفتیم پایین در راه صدای پاهایی را که بالا می‌آمدند شنیدیم صدایی که باعث آرامش خاطر ما شد ده پسر به اتفاق یک مرد پس از اینکه به ما و محل کار ما نگاه کردند پرسیدند وای چطوری اینجا مقاومت کردید سوتوان گفت به زودی خواهید فهمید بعد از تحویل دادن سلاح و مهمات و انجام تشریفات لازم، از سیزده طبقه پایین آمدیم. نه یک پنجره، نه یک چارچوب، و نه یک در، هیچ چیز سر جای خودش بند نبود. همه خرد و خراب شده و تکه پاره های آن روی پله و کف زمین ها پخش شده بود. بیرون از ساختمان وز به مراتب بدتر بود. سر راه هم به خانه، همه چیز به نظرم بیگانه بود. دیشب از خیابانی مدرن با هایی بلند هرچند قدیمی به طرف منزل میرفتند و امروز بر تلی از ویرانه ها از کنار خانههایی که با خاک یکسان شده بود، به پیش میرفتم. سنگ روی سنگ بند نبود. همه جا با شعلههای آتش چراغانی شده بود. گروههای نجات برای بیرون آوردن کسانی که در زیر آوار مانده بودند تلاش میکردند. در انتهای خیابان بلومن، سربازی را دیدم که خرابه هایی را که در حال سوختن بود، زیر و رو می کرد. به تماشای او ایستادم. از نقطه ای آجرها روی یک تک برمی‌داشت و کناری می‌گذاشت تا آنکه به دستی که از آن نقطه بیرون آمده بود رسید. دستی زرد و خشکیده، گویی می‌خواست به چیزی چنگ بزند. به گروهی از مردم که با لباس سوخته کمی دورتر ایستاده بودند، پیوستم. از حرفای آنها فهمیدم این سرباز که از جبهه روسیه برای مرخصی به منزل می در ایستگاه راه آهن گرفتار حمله هوایی شده و وقتی پس از اعلام وزیت سفید به طرف خانش می رود متوجه میشود كه که خانه خراب شده و تمام ساکنان نجات یافتند به جز همسر و فرزند یک سال و نیمهش. او در حالتی نزدیک به جنون با چشمانی بحت زده آجورها را به چپ و راست پرتاب میکرد. تا نقاب از چهره روزگار پیشین که اینک تنها به صورت جسدی در آمده بود بردارد. از وحشت لرزیدم. اشک از چشمم سرازیر شد و شروع کردم به دویدن. به طرف خانه و به طرف مادرم. آیا او هنوز زنده بود؟ خانه هنوز وجود داشت. با تمام نیرو میدویدم انگار که از ترس بال درآورده بودم. طوری از روی خرابه ها پرواز میکردم کردم که گویی ای وجود ندارد. ناگهان آن چشمم به یک پلیس افتاد. از آزای محله خودمان جویا شدم. او گفت جز شکستن در و پنجره آن طرف ها هیچ خبری نیست. هیچ خبری. دوباره آرام گرفتم. در حالی که در آتش و دود و خاک و خل محاصره شده بودم به دویدن ادامه میدادم. در بعضی مناطق دود به غلیض می میشد که تحمل آن جدا غیر ممکن بود توی جیب هایم دنبال دستمار گشتم ولی جز یک دفترچه مقررات سازمان جوانان هیتلری چند عدد نوار زخبندی و یک ورق کاغذ مچاله شده چیز دیگری پیدا نکردم کاغذ را صاف کردم و جمله‌ای را که سه بار تکرار شده بود خواندم پیشوای ما آدولف هیتلر بزرگترین مرد جنگ در تمام تاریخ است کاغذ را رو انداختم روی زمین و نسیم ملایمی آن را با خود برد. از روی ویران ها گذشت تا بالاخره تومی آتشی شد که از یکی از ساختمان های ویران شده زبانه میکشید. سر سرانجام دستمالم را پیدا کردم. همیشه در شگفت بودم که نرون، چه احساسی پیدا میکرد و چه میگفت اگر به عوض اینکه آتش سوزی روم را با حالتی بیاحساس و بدون تعصب از فاصله زیاد به شکل مجموعه ای عظیم ولی تیره و مبهم نظاره کند از میان روم آتش گرفته میگذشت و با چشمان خود جزئیات هولناک رنج را مشاهده میکرد شاید از وحشت نیروی نواختن چنگ از انگشتانش سلب میشد شاید از ترس صدا در گلویش می شکست و آوازش رنگ ماتم و اندوه به خود میگرفت. چند روزی از حمله هوایی نگذشته بود که همه خدمه ضد هوایی که کمتر از پانزده سال داشتند از خدمت مرخص شدند. هیچ گونه دلیل رسمی اعلام نشد. ظاهرا علت این بود که یکی از پستهای نورافکن به کلی نابود شده بود و تمام پرسنل آن از جمله چند پسر که بزرگترین آنها هنوز چهارده سالش تمام نشده بود. کشته شده بودند جوانترین آنها یازده سال داشت